دوست خوبم به کلاس دیگه ای از دانشکده کوچکی کتاب مقدس خوش اومدی. امروز هم به مطالعه رسالی افالی یوحنا در آخر کتاب مقدس ادامه میدیم. این رسالی کوچک نوشته شده تا پی مسیح بتونن از ایمان و نجاتشون اطمینان پیدا کنن. به باره دیگه این کتاب نوشته شده تا مسیحیان بتونن مطمئن بشن که واقعا نجات یافتن و به آسمون خواهند رفت در جلسه گذشته ما به هشت روش نگاه کردیم که میتونیم توسط اونها اطمینان حاصل کنیم ما تا ابد نجات یافتیم امروز امیدوارم با دقت به تعالیم معلممون گوش کنید تا سه روش دیگر رو که میتونیم به وسیله اونها از هدیه نجات خدا مطمئن بشیم یاد بگیرید امروز باز هم از شما دعوت می کنم به مطالعه اول یوحنا که در اواخر عهد جدید هست گوش کنید همونطور که در جلسه اول بررسی رساله اول یوحنا گفتم هدف از این رساله این هست که کسانی که ایمان دارند مطمئن شوند که واقعا ایمان دارند در یک کلمه هدف از رساله اول یوحنا اطمینان هست یوحنا همیشه هدفش رو از نوشتن به ما میگه او به ما میگه که انجیلش رو نوشته تا ما باور کنیم و اینجا میگه که این رساله رو نوشته تا کسانی که ایمان دارند بتونن از ایمانشون مطمئن بشن و یا اطمینان کاملی از نجاتشون به دست بیارن و بعد از اون واقعا به عیسای مسیح باور کنن ما وقتی انجیل یوحنا رو بررسی می کردیم در تمام جاهایی که یوحنا به ما گفته باور کنید زیر این عبارت خط کشیدیم ما باید وقتی رساله اول یوحنا رو مطالعه کنیم تمام جاهایی رو که یوحنا به ما میگه میتونیم بدونیم هایلایت کنیم که واقعا میدونیم که نجات داریم نجات چنان مسئله جدی و مهمی هست که ما لازم دربارهش مطمئن بشیم. از این رو این رساله کوچک در اواخر عهد جدید اومده چون خدا می‌خواد وقتی که ما به انتهای عهد جدید می‌رسیم اطمینان کامل از نجاتمون داشته باشیم و شکی از اون نداشته باشیم. بنابراین وقتی ما به رساله اول یوحنا نگاه می‌کنیم بیایید دنبال اطمینان از نجاتمون بگردیم. در شانزده های اول ما یک قوت اطمینان پیدا کردیم. ما فهمیدیم که هشت جهات در اون قطبنما وجود داره این روشی هست که یوحنا رسالش رو شروع میکنه. از یک نظر یوحنا به ما میگه که به ما چی خواهد گفت چون که در ادامه او در باره قطب قطبنمای اطمینان در این رساله با ما صحبت میکنه. در باب دوم یوحنا جهات بیشتری رو در قطبنمای اطمینان به ما نشون میده. یا شواهدی که بر مبنای اونها ما میتونیم اطمینان داشته باشیم من قصد ندارم که وقتمون رو صرف باب دو بکنم اما بذارید به شما بگم اگر شما باب دو رو جستجو کنید جهات زیر رو در اون قطب نمای اطمینان خواهید یافت که یوحنا برای ما در این رساله ترسیم کرده مثلا یوحنا به ما میگه که ما میتونیم بدونیم که میدونیم یا میتونیم بدونیم که باور داریم میتونیم بدونیم که نجات داریم وقتی برادرمون رو محبت میکنیم کسی که برادرش در مسیح رو محبت میکنه، این شخص حقیقتا ایمانداره اما کسی که برادرش رو دوست نداره هنوز در تاریکی گام برمی بنابراین بنابر یوحنا به ما میگه که جهت دیگر در قطب نمای اطمینان این واقعیت که ما برادرمون رو محبت میکنیم برادری که میتونیم ببینیم در باب چهار او میگه اگر کسی گوید که خدا را محبت می نمایم و از برادر خود نفرت کند دروغگو زیرا کسی که برادری را که دیده است محبت ننماید چگونه ممکن است؟ خدایی را که ندیده است محبت نماید. او بر این به عنوان موضوعی مهم تاکید میکنه و در سراسر این نامه بارها به اون اشاره میکنه. من معتقدم که یوحنا هم مثل پتروس باسواد نبوده و احتمالا این نامه رو دیکته کرده. بنابراین او هم مثل پتروس قلب خودش رو با دیگران در میون گذاشته. وقتی که قلب خودش رو با ما در میون میذاره شما نمیتونید اصولو قواندهایی رو که در رسالات پولس مثل رومیان هست در اون پیدا کنید. یوحنا در سراسر این رساله بارها و بارها از اطمینان صحبت می کنه. او می یکی از راهایی که شما می دونید که می دونید و یکی از راهایی که شما واقعا می تونید ایمان داشته باشید که حیات ابدی دارید اینه که برادرتون رو محبت کنید. یوحنا در باب دو در این مورد با ما صحبت می کنه. او میگه ای حبیبان. یکدیگر را محبت بنماییم زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد. این یک فرمان قدیمی هست چون که یکی از بزرگترین و قدیمی فرامین این بود که خدا را محبت کنید. و بعد عیسی به اون اضافه کرد که همسایه خودتون رو مثل خودتون محبت کنید. اون فرمان قدیمی در تسنیه و لاویان در عهد قدیم هست. فرمان همسایه رو محبت کن یا برادرت رو محبت کن. فرمانی قدیمی هست و منظور از همسایه و برادر کسی هست که زندگیش با زندگی تو برخورد پیدا میکنه بنابراین یوحنا میگه من واقعا فرمان جدیدی به شما نمینویسم من همون فرمان قدیمی رو براتون مینویسم اما در این حال فرمانی جدید هم هست چون که این فرمانی بود که عیسی در بالاخانه داد و به اون فرمان جدید گفت وقتی عیسی داشت دوازده شاگردش رو که سه سال اونها رو تعلیم داده بود ترک می کرد اونها رو در بالاخانه جمع کرد و گفت به شما فرمان تازه ای می دهم یکدیگر را دوست بدارید همانطور که من شما را دوست داشتهم شما نیز یکدیگر را دوست بدارید اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید یوحنا گه هر دوی اینها فرمان قدیمی و یک فرمان جدید هستند وقتی بفهمید که شما اون فرمان جدید و قدیم رو به کار گرفتید مبنایی برای اطمینانتون دارید اگر شما واقعا خدا رو محبت می‌کنید و برادرتون رو محبت می‌کنید از اونجا می‌دونید که حیات ابدی دارید جهت دیگری در قطب نمای اطمینان ما چیزی هست که یوحنا در باب دو به ما میده ما وقتی پدر رو بیش از دنیا محبت می‌کنیم می‌دونیم که می‌دونیم حیات ابدی دارید این متن بزرگی هست در باب دو که احتمالاً با اون آشنا هستید اونجا که یوحنا میگه به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید کسی که دنیا را دوست دارد محبت خدای پدر در او نیست هر آنچه به جهان تعلق دارد یعنی آنچه نفس اماره آرزو می میکند و آنچه چشمان می بینند و طلب میکنند و آنچه مایه فخر و غرور است از پدر نیست اینها همه به دنیا تعلق دارند جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت اما هر که اراده خدا را به جا آورد تا به عبد زیست خواهد کرد پس اینجا جهت دیگری در قط نمای اطمینان هست که یوحنا به ما میده آیا خدا را دوست دارید آیا واقعا خدا را دوست دارید و اگر خدا را دوست دارید آیا خدا را بیشتر از دنیا دوست دارید آیا جذب چیزهای این دنیا شده اید یا شاید جذب بعضی از چیزهای این دنیا شدید و تنها در و بزرگترین فکر شما این دنیا هست. مخصوصاً بازی هایی که این دنیا می کنه، اون موقع شما از نجاتتون اطمینان ندارید. چیزی که اینجا منظور یوحننا هست، روش دنیا هست. یک روش دنیا وجود داره و مربوط به سیستم ها هست. یک طرز زندگی و یک طرز فکر. یوحننا به ما میگه که اگر این چیزیه که ما براش زندگی میکنیم، اگر این چیزی که ما دوستش داریم، از خدا رو دوست نداریم. اما اگر پدر رو بیش از دنیا دوست داشته باشیم این دنیا با طرز زندگی و طرز فکرش و سیستم ارزشاش اون موقع جهت دیگری روی قتنمای اطمینان دارید شما میتونید مبنای اطمینانتون رو بر این واقعیت قرار بدید که شما پدر رو بیش از این دنیا با همه سیستم های اون دوست دارید بعد وقتی یوحنا ادامه میده جهات بیشتری رو روی قتنمای اطمینان به ما شما باید این رساله رو بخونید و دنبال این جهات در قطب نمای اطمینان بگردید ما میدونیم که میدونیم یوحنا در باب دو به ما میگه چون که روح القدس ما رو به لحاظ نظری پاک نگه میداره چیزی که واقعا یوحنا اینجا میگه از یک نظر این هست که شما میدونید که میدونید چون که شما میدونید امیدوارم که این زیاد پیچیده نباشه اما چیزی که یوحنا میگه و دوباره در باب دوم این رساله به ما میگه این هست اما مسیح شما را با روحالقدس القدس خود محس کرده است و از این رو همه شما حقیقت را میدانید. من این را به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت بیخبرید. بلکه چون آن را میدانید و آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی سرچشمه نمیگیرد، پس آن دروغگوی واقعی کیست؟ کسی است که بگوید عیسی مسیح نیست. این شخص دشمن مسیح است. چون او، هم پدر و هم پسر را رد می کند. هر که پسر را رد کند، پدر را نیز رد کرده است و هر که پسر را بپذیرد پدر را نیز پذیرفته است. بگذارید تأثیر پیامی که از اول شنیدید در دلهای شما باقی بماند. اگر تأثیر آنچه که از اول به شما گفته شده است در دلهای شما بماند، شما همیشه در پدر و پسر خواهید بود. و وعده ایسای مسیح این هست که او حیات جاویدان به شما خواهد بخشید. من این چیزها را درباره اشخاصی که میخواهند شما را گمراه سازن نوشتهام و اما شما نیازی ندارید که کسی شما را تعلیم دهد زیرا روح القدس که مسیح به شما داده است در شما زندگی می کنه. روح خدا در هر مورد به شما تعلیم می دهد و تعالیم او برحق است و در آن ناراستی نیست. پس همانطور که روح به شما تعلیم می در مسیح بمانید. چیزی که یوحنا اینجا به ما میگه خیلی نزدیک به چیزی هست که پولس در باب دوم اول قرنتیان گفته. در باب دو اول قرنتیان پولس گفته که وقتی شما یاد میگیرید، شما از طریق چشم و گوش و قلب یاد میگیرید. شما به وسیله چیزهایی که میبینید یاد میگیرید. شاید چیزهایی که در کتاب خوندید یا مشاهده کردید. شما همینطور توسط چیزهایی که میشنوید مثل خطابه ها و یا گفتگوها یاد میگیرید. همینطور توسط تصمیماتی که میگیرید یاد میگیرید اراده در پروسه یادگیری بسیار مهم است. پولس در اول قرنتیان باب دو مثل یک روانشناس تربیتی رفتار میکنه اما همینطور در باب دو اول قرنتیان گفته اگر میخواهید چیزهای روحانی رو یاد بگیرید فقط توسط چشم و گوش و قلب نمیتونید اینجا دیگه پولس مثل یک روانشناس عمل نمیکنه وقتی به ما میگه که برای یادگیری مسائل روحانی باید یک مجرای روحانی هم داشته باشیم. چون که مسائل روحانی توسط روح تشخیص داده میشن اگر ما روح القدس رو نداشته باشیم هرگز مسائل روحانی رو یاد نمیگیریم. پولس در آیه 16 همان باب به ما میگه مرد غیر روحانی یا نفسانی نمیتونه مسائل روحانی رو درک کنه مهم نیست که او چقدر تحصیل کرده هست حتی ممکنه دکترا هم داشته باشه اما اون نمیتونه اگر مجرای روح رو نداشته باشه مسائل روحانی رو درک کنه. یوحنا هم چیزی بسیار شبیه به اون میگه. یوحنا از کلمه "مسح" استفاده میکنه. یوحنا در آیه 20 به ما میگه: "اما مسیح شما را با روح القدس خود مسح کرده است و از این روح همه شما حقیقت را میدانید. بعد در آیه 27و میگه: "اما شما نیازی ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، زیرا روح القدس که مسیح به شما داده است در شما زندگی میکند." روح خدا در هر مورد به شما تعلیم میدهد و تعالیم او برحق است و در آن ناراستی نیست پس همانطور که روح به شما تعلیم میدهد در مسیح بمانید این مس میتونه به شما تعلیم بده و وقتی این مسیح که شما در خود دارید و واقعی هست مسائل روحانی را رو به شما تعلیم میده شما جهت دیگری در قطب نمای اطمینان دارید این جهت دیگری در قطب نمای اطمینان شما هست چون که شما بدون اون مس نمیتونستید چیزهای روحانی رو درک کنید اگر شما در مسیح نبودید اگر زندگی ابدی نداشتید نمیتونستید مثالهای روحانی رو درک کنید در زبان یونانی عهد جدید کلمه ای که برای مس به کار رفته کلمه کاریزما هست پس شما میتونید وقتی آیات 20 تا 27 رو میخونید هر جا که کلمه مس به کار رفته کاریزما رو به جای اون قرار بدید در اول قرنتیان باب دوازده وقتی که پولوس به ما میگه که روح القدس اطایای روحانی به کلیساش میده، پولس اون پدیده رو کاریزماتا میخونه. وقتی پولس کسی رو توصیف میکنه که اون پدیده در اون کار میکنه، او میگه اون شخص کاریزما داره. این آیات به ما این واقعیت رو تعلیم میدن که روح القدس کسی که در قلب و ذهن شما ساکن هست، دلیل درک شما از مسائل روحانی هست دلیلی که شما به معلم انسانی نیاز ندارید به خاطر روح القدسی هست که درون شما زندگی میکنه و معلم شما هست. اگر روح القدس که در شما ساکن هست و به شما تعلیم میده و شما شواهد اون واقعیت عظیم رو تجربه میکنید جهت دیگری در قطب نمای اطمینان از ایمانتان به دست میارید. من میخوام شما را به چالش بکشم. اگر شما در طول مطالعه این قطب نمای ایمان با ما همراه بودید چه میکنید؟ احساسی می کنید؟ هدف رساله اول یوحنا اطمینان هست. اما این رساله عمیق برای این نوشته نشده که به شما اطمینانی کاذب بده من شما رو به چالش میکشم که با دعا و دقت دومین کتابی رو که یوحنای رسول نوشته بخونید و از این قطب نمای اطمینان پیروی کنید اگر این رساله عمیق اما ساده اطمینان شما رو سلب کنه بعد با دقت و با دعا انجیل یوحنا رو مطالعه کنید وقتی مطالعه میکنید به هر جایی که یوحنا به شما میگه باور کنید توجه کنید بعد این رساله رو مطالعه کنید که به شما میگه چطور میتونید بدونید که میدونید و ایمان دارید ازتون میخوام که رساله اول یوحنا رو و قطب نمای روحانی اطمینان رو مرور کنید و ببینید که آیا از ایمانتون مطمئن هستید یا نه یک شبان جز به وسیله نظراتی که در مورد افراد کلیساش اظهار میشه نمی تونه بفهمه که آیا اونها تولد دوباره دارند یا نه و به‌لحاظ روحانی در کجا قرار دارند در حالی که برای یک شبان امکانپذیر نیست که بدونه همونطور که مسئله گندم و کرکاس به ما تعلیم میده یک شبان از نظراتی که در مورد جایگاه روحانی افراد میشنوه میتونه حدس بزنه هر کسی که درباره آسمان صحبت میکنه به آنجا نخواهد رفت و هر کسی که ادعا میکنه که روحانی هست روحانی نیست. از کجا می دونید که آیا مردم روحانی هستند یا نه؟ این یک راهنما از کتاب اول یوحنا برای چنین شبانی هست این یک سرنخ برای وضعیت روحانی افرادش است. کسانی که بصیرت روحانی دارند، کسانی هستند که حقیقتا در مسیح هستند. چون که اون افراد روح القدس رو دارند. وقتی یوحنا در آیه 20 میگه اما مسیح شما را با روح القدس خود معض کرده است و از این روح همه شما حقیقت را می‌دانید یا وقتی در آیه 27 میگه و اما شما نیازی ندارید که کسی شما را تعلیم دهد زیرا روح القدس که مسیح به شما داده است در شما زندگی می کند. روح خدا در هر مورد به شما تعلیم می‌دهد و تعالیم او بر حق است و در آن ناراستی نیست پس همانطور که روح به شما تعلیم می‌دهد در مسیح بمانید او در هر دو مورد از یک کلمه یونانی استفاده میکنه این همون کلمه یه کاریزما هست در این آیات روح القدس به شما میگه که شما کاریزما دارید شما روح القدس رو دارید و او شما رو قادر میکنه که مسائل روحانی رو بدونید. روح القدس معلم شماست یوحنا همون چیزی رو به ما میگه که پولس در اول قرنتیان باب دو به ما گفته. شما روح القدس رو دارید شما او رو در قلبتون دارید و این کاریزمایی که در قلبتون دارید قادر هست که شما را تعلیم بده تا نیازی به تعلیم هیچ انسانی نداشته باشید. من مردی رو میشناسم که به مدت سی ماه در سلول انفرادی در کشوری خارجی بازداشت بود. در اولین کریسمسی که در اونجا بود یک کشیش کاتولیک به او یک کتاب مقدس داد. به مدت سه سال و شبانه روز کتاب مقدس میخوند. میخوام بهتون بگم که اون مرد کتاب مقدس رو به خوبی میدونه اما هیچ انسانی به او کتاب مقدس رو تعلیم نداده کسی اونجا نبوده که به او تعلیم بده خود روح القدس به او تعلیم داد آیا فکر میکنید این امکان پذیر هست؟ یوحنا به ما میگه که بله امکان پذیر هست اساسا یوحنا میگه گوش کنید اگر شما واقعا حیات ابدی دارید پس شما مسیحی دارید شما مسیح رو دارید شما یک کاریزما دارید و این کاریزما میتونه همه چیز رو به شما تعلیم بده تا اینکه به هیچ تعلیم انسانی نیازمند نباشید اگر شما کتاب مقدس رو باز کنید و احساس کنید که کسی تمام اون رو برای شما باز میکنه، وقتی شما میشنوید که کتاب مقدس تعلیم داده میشه و به نظر میرسه که صدایی میگه این مربوط به چیزی هست که شما از موعظه شبان شنیدید این مربوط به چیزی هست که شما در کلاس کتاب مقدس شنیدید فکر میکنید چه کسی تمام اینها را برای شما باز میکنه پولوس گفته اینها کلماتی هستند که روح القدس تعلیم میده او مسائل روحانی رو به افراد روحانی تعلیم میده و یوحنا به ما میگه که این جهت دیگری در قطب نمایه اطمینان هست. چون اگر شما بصیرت روحانی داشته باشید میدونید که حتما روح القدس رو دارید و حیات ابدی دارید به نظر میرسه که نظریه اساسی دوستی در کلیسای یهد جدید بسیار اساسی بود پولس در اول قرنتیان باب دوازده های سه گفته پس باید بفهمید که اگر کسی تحت تأثیر روح خدا باشد نمی نمیتواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمیتواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس به نظر می رسد که این مبنای نظریه دوستی در کلیسای عهد جدید است عیسی خداوند است یوحنا این را طور دیگری بیان میکنه یوحنا گفته که این امتحانی نظری هست که شما به وسیله اون میتونید مردم را آزمایش بکنید. شما در مورد عیسی به چی ایمان دارید؟ پس آن دروغگوی واقعی کیست؟ کسی است که بگوید عیسی مسیح نیست؟ این شخص دشمن مسیح است، چون او هم پدر و هم پسر را رد می کند. یوحنا خیلی زیرک نیست. او این رو کاملا با سادگی میگه. آیا باور میکنید که عیسی مسیح و مسیحای موعود هست؟ این سؤال مناسبی هست که شما میتونید از مردم بپرسید تا بدونید اونها به لحاظ نظری و الهیاتی در کجا قرار دارند من کسانی رو دیدم که میگفتند او مسیح نبود او بخشی از مسیح رو در خودش داشت اما بودا هم همون طور بود و گاندی هم همینطور. بسیاری از مردم مسیح رو در خودشون دارند. عیسی مسیح نبود یوحنا گفته که وقتی کسی این طور ادعا بکنه اون شخص ضد مسیح و دروغگو است چون عیسی مسیح است، این مبنای الهیاتی در دوستی در کلیسای اهد جدیده. وقتی کسی میگه که عیسی خداونده یا عیسی مسیح است، اون نمیتونه این رو جز به کمک روح القدس بگه. روح القدس این رو به او تعلیم داده. این دلیلی بر نجات او هست و مبنایی برای اطمینان او. در باب سه یوحنا به ما میگه ما در این دنیا دونو افراد داریم. ما پسران خدا رو داریم و پسران شیطان رو یوحنا به ما میگه اگر بخواهیم فرقشون رو بدونیم اون بسیار ساده است از یک نظر شما نمیتونید تفاوتشون رو بدونید اما از یک نظر میتونید عیسی گفته از هایشان آنها را خواهید شناخت پس یوحنا در باب سه این رو اینطور بیان میکنه و هر که در گناه پسر میبرد فرزند شیطان است زیرا شیطان از ابتدا گناهکار بوده و پسر خدا ظاهر شد تا کار شیطان را نابود سازد فرزندان شیطان دائما و مرتبا گناه می‌کنند کار اونها گناه کردنه، اما فرزندان خدا از روی عادت گناه نمی‌کنند کار اونها گناه کردن نیست الگوی اونها الگوی مداوم و از روی عادت برای گناه نیست جاهایی در باب سه هست که شاید بعضی ها فکر کنند که یوحنا داش بیگناهی کامل رو تعلیم میداد مثلا او می بنابراین محال از کسی که در اتحاد با مسیح زندگی می کند در گناه به سر ببرد اما هر که در گناه زندگی می کند او را هرگز ندیده و نشناخته است ای فرزندان من کسی شما را گمراه نسازد هر که نیکی کند شخص نیکوست همانطور که عیسی مسیح کاملا نیک است و هر که در گناه به سر میبرد فرزند شیطان است زیرا شیطان از ابتدا گناکار بوده و پسر خدا ظاهر شد تا کار شیطان را نابود سازد هر که فرزند خداست نمی تواند در گناه زندگی کند زیرا ذات الهی در او هست و نمی تواند در گناه به سر برد. زیرا خدا پدر اوست فرق بین فرزندان خدا و فرزندان ابلیس در این هست هر که نیکی نمی کند یا برادر خود را دوست نمی دارد فرزند خدا نیست یوحنا به ما میگه که اون بسیار ساده است. شما میتونید فرق بین پسران خدا و پسران شیطان رو از طرز زندگی اونها تشخیص بدید. مفهوم بسیار مهمی در باب سه هست و شما باید اون رو به خاطر بسپارید. در زبان یونانی زمان حال ساده بیانگر عملی مداوم هست. بنابراین یوحنا میگه که اگر شخصی از نوع متولد میشه و اگر در مسیح هست به طور مداوم و از روی عادت گناه نمیکنه. کار او گناه کردن نیست اما معنیش این نیست که او نمیتونه گناه کنه و یا هرگز گناه نمیکنه معنیش اینه که وقتی گناه میکنه به گناه میفته و گناه برای او طبیعی نیست وقتی شما دوباره متولد میشید الگوی شما تغییر میکنه و گناه کردن الگو و عادت شما نیست شاید شما به گناه بیافتید یوحنا اون رو در باب یک کاملا تصریح کرده او میگه اگر بگوییم که بیگناه هستیم، خود را فریب می دهیم و از حقیقت دوریم. اما بعد او می نویسه این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. یوحنا میگه گه که برای فرزندان خدا گناه کردن عادی نیست. من فکر می کنم ما باید این رو درک کنیم. زندگی عادی یک پیرو مسیح چیه؟ زندگی معمولی یک پیرو عیسی مسیح زندگی گناه گناهالوت نیست. این برخلاف پیروی مسیحه. و وقتی پیرو مسیح گناه میکنه که امکانش هست این غیرعادی هست این یک استثناء هست نه یک قاعده اصولی هست که وقتی یک پیرو مسیح به گناه میفته باید مراعات بشه او میگه اما اگر به گناهان خود اعتراف نماییم میتوانیم به او اعتماد کنیم زیرا او به حق عمل میکند او گناهان ما را میامرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک میسازد اصل دیگری که وقتی یک ایماندار به گناه میفته مراعات میشه چیزی هست که در آیات ابتدایی بابشش قلاتیان اومده. افراد روحانی تعلیم دیدن که ایماندار سقوط کرده رو با فروتنی کامل احیا کنن و بدونن که دفعه بعد ممکنه خود اونها ایماندار سقوط کرده ای باشن که نیازمند کمک هستن. اما برای یک پیرو مسیح گناه کردن امری عادی نیست. پس در باب جهت روی قطب نمای اطمینان این هست. الگوی زندگی شما چی هست؟ اگر یک گانگستر در یک جلسه بشارتی جلو بره و اعتراف ایمان بکنه همه هیجان زده میشن. شاید روزنامه ها با حروف دروش بنویسن گانگستر نجات یافت. وقتی چنین کسی نجات پیدا میکنه مردم چیکار میکنن؟ اونها منتظر میشن تا نتیجه رو ببینن. آیا او روز بعد هنوز هم میره و در منطقه خودش خلافکاران رو هدایت میکنه آیا او هنوز هم پادشاه دنیای زیرزمینی خواهد بود اگر تغییری در الگوی او رخ نده اون وقت ما نتیجه میگیریم که اون شخص فقط یک اعتراف پوچ به ایمان کرده چون واقعا چیزی در زندگی او تغییر نکرده که تولد تازه او رو نشون بده اما اگر الگوی زندگی او تغییر بکنه اون وقت ما میدونیم که شاهد یک معجزه ای. این یکی از بزرگترین چیزها در مورد انجیل ایسای مسیح هست که معجزه میتونه اتفاق بیفته. این یک معجزه هست که ببینیم روح القدس و ایسای قیام کرده زندگی های شکسته رو ترمیم می چنانکه هر روز شاهد این هستیم. اما اگر اونها گناه بکنند این غیرعادی هست. چونکه که الگوی زندگی اونها از این به بعد این هست که گناه نکنند. وقتی کسی نجات پیدا میکنه و الگوی زندگیش تغییر میکنه اون واقعیت مبنایی برای اطمینان ما و جهت دیگری در قطب نمای اطمینان ما میشه در پایان بابسه یوحنا متن بزرگی در مورد اطمینان به ما میده این متن مورد علاقه مارتین لوتر بود نمیدونم آیا تا حالا افسرده شده اید این متنی هست که به ما میگه ایمانداران هم میتونن افسرده بشن در پایان بابسه شما این سخنان رو میبینید ای حبیبان هرگاه دل ما ما را مذمت نکند در حضور خدا اعتماد دارید در اون آیه قلب به خیلی چیزها مربوط هست. کلمه قلب بیش از هزار بار در کتاب مقدس تکرار شده وقتی کتاب مقدس به قلب اشاره میکنه غالبا به مرکز ارادی ما اشاره میکنه و اون قسمت از ما که تصمیم گیری میکنه گاهی کلمه قلب به عواطف و احساسات اشاره میکنه آیا نجات ما بر مبنای چیزی هست که بی ثبات هست؟ آنطور که ما حس می کنیم، من مطمئنم شما از این واقعیت آگاهید که احساسات بی شما می تونه تغییر کنه و مبنای محکمی برای اطمینان از نجاتتون نیست. اگر اطمینان شما بر مبنای احساسات شما باشه، اطمینان شما بسیار آبکی خواهد بود. وقتی افسرده هستید، آیا اونطور که یوحنا اینجا در باب سه مطرح می وقتی دل شما شما رو محکوم می آیا به خاطر احساستون نجاتتون را از دست میدید؟ نه. اینها کلمات مثبتی در اینجا هستند. وقتی دل شما شما را محکوم میکنه، اینو به خاطر بیارید. خدا بزرگتر از دل شما هست. خدا بزرگتر از احساس شما هست. نجات شما بر مبنای احساس شما نیست. آیا اون آیات رو در دوم تیموتاوس که پولس وقتی در زندان مامرتین بود دیکته کرده به خاطر میارید؟ به طور خلاصه برخی از سخنانی که پولس به تیموتاوس گفته اینها هستند تیموتاوس، یادت باشه وقتی ما اونقدر ضعیفیم که حتی نمیتونیم دعا کنیم وقتی اونقدر ضعیفیم که حتی نمیتونیم بطلبیم حتی نمیتونیم باور کنیم وقتی اونقدر ضعیف هستیم که حتی مطمئن نیستیم که آیا ایمان داریم یا نه این به اون معنا نیست که ما نجاتمون را از دست میدیم این اساساً چیزی بود که پولس به تیموتائوس گفت او ادامه میده و میگه خدا سنگ بنای بزرگی داره و بر روی اون سنگ بنای بزرگ این کلمات حک شده خداوند متعلقان خیش را میشناسد پس حتی وقتی بی ایمان هستیم خدا وفادار میماند به نام گفته رسولان یوحنا و پولس خدا بزرگتر از قلب ما هست خدا بزرگتر از احساسات متغیر ما هست مارتین لوتر میدونست افسردگی چیه بسیاری از رهبران روحانی افسردگی رو تجربه کردند این آیه ای بود که واقعا به لوتر کمک کرد خدا بزرگتر از قلب ما هست حتی اگر قلب ما ما را محکوم کند نجات ما بر مبنای چگونگی احساس قلبی ما نیست نجات ما بر اساس این واقعیت بنا شده که ما به انجیل ایمان داریم نجات ما بر اساس این واقعیت بنا شده که ما فرمانهای او رو به جا میاریم مخصوصا این فرمانش رو که میگه همدیگر رو محبت کنید این چیزیه که یوحنا در پایان باب سه با ما در میون میذاره شما میتونید براحتی اون رو ببینید وقتی شما رساله اول یوحنا رو میخونید میتونید با دقت و دعا اون رو مطالعه کنید و دنبال اطمینان بگردید هر جا که میبینید یوحنا به شما میگه این امکان هست که شما بدونید که میدونید حیات ابدی دارید زیرش خط بکشید از کجا میتونید بفهمید که شما نجات دارید این پیغام اول یوحنا هست امیدوارم که حالا بدونید که نجات یافتید و از نجاتتون اطمینان پیدا کنید اگر اطمینان ندارید انجیل یوحنا رو مطالعه کنید و با دعا از خدا بخواهید که به شما کمک کنه تا کلامش رو درد کنید وقت امروز ما به پایان رسیده با فیض و ایمان به خداوند ما عیسای مسیح لطفاً اجازه ندید یک روز دیگه بدون اطمینان از نجاتتون سپری بشه عزیزان عجب درست خارقلاده کلام خدا خیلی واضحه اون میخواد ما بدونیم که میدونیم مال او هستیم و با این اطمینان زندگی کنیم دشمن کسیه که میخواد شما شک بکنید با دل سردی و شکست خوردگی زندگی کنید دعا میکنیم خدا ایمان شما رو تقویت کنه. دایما اینه که این درس ها شما رو تشویق کنه تا در شناخت مسیح و در ایمان رشد کنید. ترتیبی بدین که در جلسی بعدی در ادامه بررسی اول یوحنا با ما همراه باشین. تا اون موقع بیاید نبا حرف بلکه در عمل محبت کنیم و از شادی و آرامشون لذت ببریم.